عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. امروز ما مطالعه های شعر رو به پایان خواهیم برد. وقتی که به قزل های سلیمان نگاه می‌کنیم، یادمون باشه که کتاب مقدس به ما خاطرنشان می‌کنه که تمامی کتاب مقدس مفیده. مطالعه زیادی از این کتاب کوچک رو می‌تونیم یاد بگیریم. خدا به هر کدوم از ما اهمیت میده. و ما رو دوست داره اون نه تنها میخواد هر کدوم از ما عشق رو بیشتر بشناسیم بلکه میخواد او رو در زندگی هامون تجربه کنیم به این کتاب کوچک که تماما مربوط به عشق و محبت هست به دقت گوش کنید این شما و این معلم ما شعر زبان قلب هست بدیم معنی که میتونیم بگیم کتاب های شعر پیغام خدا, خدا خطاب به قلب قوم خودش است. کتاب ایوب پیغام خدا به دلهای دردمند قومش هست. پیغام خدا خطاب به قومش که در رنج هستند. کتاب مزامیر پیغام خدا به قومش در زمانهای پرستش هست. کتاب مزامیر احساساتی رو به ما نشون میده که قوم خدا در هنگام پرستش باید در قلبشون تجربه کنند. این اساس کتاب مزامیر هست. همینطور که دیدیم کتاب امثال پیغام خدا به قومش در زمانهای رویارویی با فشارهای روزمره زندگی هست مفهوم انسان درونی که اشاره کتاب مقدس به قلب یا روح و جان هست هفتاد بار در کتاب امثال تکرار شده به این دلیل که کتاب امثال در زمره کتابهای شعر دسته‌بندی شده اونها قلب قوم خدا را مخاطب قرار میدن کتاب جامعه پیغامی خطاب به قوم خداست در زمانهایی که دچار شک هستند. به اعتقاد من ایمان بیشتری در شک صادقانه هست تا یک عقیده نصف نیمه. گاهی چیزی که بهش شک، سوال کردن و تحقیق میگیم بی ایمانی نیست. یک ذهن جستجوگر میتونه ایمان خودش را از طریق چیزی که ما بهش شک میگیم بیان کنه. آخرین کتاب از مجموعه اشعار غزل غزلهای سلیمان هست که است از طرف خدا خطاب به قومش در زمانهای عشق ورزی. شاید این باعث تعجب شما بشه که در این دسته از کتاب خدا قلب قوم خودش رو در زمانهای عشق ورزی مخاطب قرار میده. سلیمان هزار و پنج قزل نوشته. این قزل سلیمان تنها قزلیه که ما بهش دسترسی داریم. اما این جواهر زیبایی که در کتاب مقدس در پایان کتاب های اشعار قرار داده شده. اگر شما چنین این کتابی رو در کتاب مقدس دارید اون یقیناً یکی از کتاب‌های شعر هست، چون مسئله عشق معمولاً باید با شعر مطرح بشه وقتی که غزل غزلهای سلیمان رو می‌خونید فکر می‌کنید که یک زوجی که در ماه اصل هستند صدای اونها رو از طریق میکروفونی می‌شنوید چون که تمام این صحبت‌های سمیمانه عاشقانه هست. جوانان یهودی تا سن سی سالگی از خواندن غزل غزلهای سلیمان منع شدند و این رو هم می‌دونم که معلمین تا زمانی که موهاشون سفید نشده اجازه ندارند غزل غزل‌های سلیمان رو موعظه کنه من الان چند تا تار سفید توی سرم دارم به همین دلیل فکر میکنم میتونم چند دقیقه راجع به اون صحبت کنم چون که این کتاب گفتگوی عاشقانه بین دو دلداده هست. شاید از خودتون بپرسید چرا به کتابی مثل غزل غزل‌های سلیمان اجازه داده شده در کتاب مقدس قرار بگیره یک چنین کتابی در کتاب مقدس چه کاری داره اگر کتاب غزل غزل‌های سلیمان به صورت یک نمایشنامه تلویزیونی در میومد، احتمالاً ما او رو در ساعات پایانی شب میذاشتیم که بچه هامون نتونن اون برنامه رو ببینن جواب های زیادی برای این سوال هست چرا این کتاب رو در کتاب مقدس داریم اولین جواب و فکر می‌کنم واضحترین جواب اینه کتابی مثل غزل های سلیمان به این دلیل در کتاب مقدس قرار داده شده که مقدس بودن روابط جنسی رو به ما نشون بده در کتاب پیدایش وقتی خدا همه چیز رو خلق میکنه بعد از خلقتش میگه و خدا دید که نیکوست این جمله چندین بار تکرار شده بعد از اینکه خدا انسان رو خلق میکنه ما این رو میخونیم که خدا گفته خوب نیست که آدم تنها بماند و بعد خدا زنی ساخت وقتی خدا زن و مرد رو ساخت اونها رو نر و ماده خلق کرد و زن و مرد رو برای یک رابطه جنسی با همدیگر متحد کرد و بعد این رو میخونیم که میگه و خداوند به اونها نگاه کرد و گفت اینک بسیار نیکو هست. در پرتو این آیه در کتاب پیدایش قوم خدا باید چه رفتاری در قبال روابط جنسی داشته باشد سالها پیش شنیدم دکتر هنری برانت یک روانشناس برجسته مسیحی در کلیسایی برای حدود 600 زن صحبت می کرد. بعد از اینکه دکتر برانت موعظه کرد او یک جلسه پرسش و پاسخ ترتیب داد بعد از اینکه سوالات متعددی مطرح شد و جواب داده شد خانمی که به نظر می‌رسید از خانواده‌ای متشخص بود، بلند شد و این سوال را پرسید. دکتر در مورد روابط جنسی چی فکر می‌کنید؟ دکتر براند جواب داد: راستش رو بخواید من اونو دوست دارم. البته همه خندیدند. بعد دکتر گرانت پرسید: چرا به جواب من خندیدید؟ آیا من نباید روابط جنسی رو دوست داشته باشم؟ او در ادامه بحث زیبایی در مورد مقدس بودن روابط جنسی را رو آغاز کرد. او گفت وقتی خدا این رابطه رو ساخت گفت بسیار نیکو بود. حالا شما چی میگید؟ پاکدینان دینان عقیده دارند که شما نباید روابط جنسی رو دوست داشته باشید. و به فرض اگر هم دوست داشته باشید نباید اون رو به زبون بیارید. آیا این رفتاریه که ما باید در قبال روابط جنسی داشته باشیم؟ به قول بسیاری از محققین اولین دلیلی که خدا چنین کتابی رو در کتاب مقدس قرار داد اینه که به ما نشون بده که، روابط جنسی بسیار نیکو هست این چالشی هست که فرزندانتون رو به نحوی تربیت کنید که اونها باور داشته باشند که روابط جنسی بسیار خوبه و اونها باید تا زمان ازدواج باکره بمونن آیا تا حالا این رو به فرزندانتون یاد دادی؟ این چالشی برای امروز هست فرض کنید که من دخترها و پسرهایی دارم و میخوام که ازدواج پاکی داشته باشند. چطور میتونم بدون اینکه آموزش صحیحی در مورد روابط جنسی به اونها بدم به هدفم برسم من نباید به اونها تلقین کنم که روابط جنسی چیز کثیفیه اما باید از اونها بخوام که از روابط قبل از ازدواج پرهیز کنن من فکر میکنم یکی از بزرگترین دروغها از اعماغ جهنم اینه که میگند روابط جنسی چیز کسیفیه آیا تا کنون ملاحظه کردید که بزرگترین دروغ از اعماق جهنم مرتبا در کنار بزرگترین حقایق خدا موعظه میشه کتاب مقدس میگه خداوند نیکوس اما مردم چی رو باور میکنن بسیاری از مردم بر این باورند که خدا وحشتناکه و اگر شما طبق اراده خدا عمل کنید از بدترین جایی که میتونید تصور کنید سر در خواهید آورد این دروغی از اعماق جهنمه خدا میگه روابط جنسی خوب هست دنیا میگه روابط جنسی کسیفه شیطان همیشه میخواد که چیزهایی رو که خدا خلق کرده تحریف کنه و از بین ببره. همه فیلم های و بسیاری از تصاویری که در روی دیوارهای های عمومی به چشم میخورند سعی دارند که به بچه های شما بگند که روابط جنسی چیز کثیفیه. اگر شما هم به بچه هاتون الغا کنید که روابط جنسی کثیفه میتونید تعادل زندگی زناشویی و روابط جنسی اونها رو به هم بزنید. به عنوان یک شبان من به بسیاری از زوجها مشاوره دادم. من قبلا گفتم که بعد جسمانی ازدواج میتونه ده درصد اون رابطه باشه. اما وقتی که اون روابط جسمانی اونطور که باید باشه نیست میتونه تبدیل به 90 درصد مشکلات بشه. وقتی که در جلسات مشاوره دقیق میشید میفهمید که زن بسیار سرد مزاجه و یا مرد ناتوانی جنسی داره. وقتی که سعی میکنید منبع سرد مزاجی مرد یا زن رو بدونید میبینید که اغلب کسی به اونها گفته کسی که روابط جنسی داره کثیف است چون به اونها گفته روابط جنسی چیز کثیفیه اونها نمیتونن قدر اون روابط رو بدونند و از اون رابطه مقدس لذت ببرند و یا باور کنند که روابط جنسی نیکو هست بنابراین اونها خجالت میکشند و احساس گناه میکنند و اونطور که باید نمیتونند در روابط جنسیشون ازدواجی مقدس داشته باشند. در فضای یک ازدواج مقدس، روابط جنسی مقدس زیبا و نیکو فرض شده. اونهایی که بر باورند که روابط جنسی چیز کثیفی هستند، نمیتونند قصد خدا را به انجام برسونند. اگرچه همین آدمها در یک فضای عشقبازی تبدیل به گلوله های آتش در رخت خواب میشند. اونها به این ترتیب دلیل میارند که روابط جنسی کسیفه، عشقبازی کسیف بنابراین اونها میتونن روابط جنسی رو مانند یک وظیفه به انجام برسونن. اگرچه همین آدمها در فضای عشقبازی تبدیل به گلوله‌های آتش در رخت خواب میشن، اونها به این ترتیب دلیل میارن که روابط جنسی کثیفه، اشقبازی کثیفه. بنابراین اونها میتونن روابط جنسی رو مانند یک وظیفه به انجام برسونن. قمنگیز اینه که اونها به دروغ‌های شیطان باور دارن و در جایی که باید به مسائل زناشوییشون عمل کنن نمیتونند از عهده بر در حالی که روابط جنسی مقدس و نیکو توصیف شده آیا میتونید درک کنید که چه صدمه ای به بچه هاتون میزنید وقتی به اونها میگید که مسائل جنسی چیز کسیفیه؟ اگر تقدس روابط جنسی برای شما و فرزندانتون گفته بشه اون وقت میفهمید که تنها دلیلی که کتاب غزل غزل ها در کتاب مقدس اومده چیه و به این ترتیب این کتاب سلیمان میتونه جایگاه خودش رو در کتاب مقدس پیدا کنه. اگر تقدس روابط جنسی تنها پیغامی باشه که شما از این غزل عشقی میگیرید اون وقت قلب مهربان خدا شاد میشه صحبت از این حقیقت که روابط جنسی در فضای ازدواج مقدس، نیکو و زیباست بودن غزل غزلها در کتاب مقدس رو توجیه میکنه غزل غزلهای سلیمان روابط جنسی رو در زمینی ازدواج به صورت مقدس و زیبا بیان میکنه وقتی که شبان یک کلیسایی در یک شهر ساحلی بودم از من خواسته شد که برای گروه کثیری از جوانان در مورد مسائل جنسی صحبت کنم. مشخص بود که همه این جوانان روابط جنسی داشتند و هیچ کدوم از اونها متأهل نبودند. بسیاری از اونها با تخته سواری اومده بودند، چون می دونستم که بسیاری از این جوانان توی دردسر هستند. ضمن اینکه موعظه می کردم از اونها سوالی پرسیدم. گفتم آیا فکر می کنید که می تونید تخته موج سواری هاتون رو بیارید و توی حیات پشتی به من اسکیت بازی یاد بدید؟ بچه ها گفتن البته که نه. شما نمیتونید موجسواری رو یاد بگیرید مگر اینکه تختتون رو در آب قرار بدید. بعد بنا فاصله به موضوع صحبت برگشتم و به اونها گفتم شما واقعا نمیتونید در مورد مسائل جنسی چیزی یاد بگیرید مگر اینکه در فضای ازدواج باشه. چون ازدواج جاییه که در اون روابط جنسی نیکو و زیبا توصیف شده. و به همون ترتیب غزل های سلیمان تقدس روابط جنسی رو در فضای ازدواج بیان میکنه. بسیاری از محققین متحد بر این باورند که دلایل دیگری هم هست که چرا خدا غزل قزلهای سلیمان رو در کتاب مقدس قرار داده. دلیل دوم اینه که غزل قزلهای سلیمان به صورت تمثیلی محبت یهوه خدا رو نسبت به اسرائیل نشون میده. رابطه بین یهوه خدا و قوم برگزیده اسرائیل به رابطه آشقانه در کتاب مقدس تشبیه شده. مخصوصا در کتابهای انبیا رابطه بین خدا و قوم اسرائیل به رابطه بین زن و شوهر تشبیه شده به رابطه بین عاشق و معشوق و یک زوجی که نامزد هستند در سرتاسر کتاب مقدس تعلیمی که بهش فرمان بزرگ میگیم به کار رفته فرمان بزرگ اینه باید خداوند خدای خود را با تمامی قلب و با تمامی فکر و تمامی قوت و تمامی جانتان محبت کنید آیا این واقعا امکان داره که رابطه ی عاشقانه با خدای خودتون داشته باشید؟ کتاب مقدس میگه بله. رابطه ی خدا با شما مقرر هست که رابطه ی عاشقانه باشه. ترین رابطه ای که در زندگی دارید، رابطه ی زناشویی نیست. ترین رابطه ی زندگی شما رابطه ی شما با خدا هست. روانشناس مشهور کارل جونگ به ما میگه که مردان در مورد روابط زناشوییشون شون تر حرف میزنن تا در مورد مسائل مذهبیشون چون زندگی روحانی اونها سمیمانه تر و خصوصی تر از روابط جنسیشون هست رابطه شما با خدا باید رابطه ای سمیمانه باشه شما باید از این حقیقت آگاه باشید که خدا شما رو دوست داره و باید محبت او رو تجربه کنید شما باید عملا و حقیقتا در تجربه واقعی رابطه ی عاشقانه با خدا داشته باشید این روشیه که رابطه ما با خدا در عهد قدیم به تصویر کشیده شده. بسیاری از محققین عقیده دارند که گذشته از اینکه که غزل غزلهای سلیمان صحبت‌های عاشقانه بین دو دل داده است، همان صحبت‌های عاشقانه به صورت تمثیلی رابطه بین یهوه خدا و قوم اسرائیل را به تصویر کشیده. وقتی عهد جدید رو میخونید خواهید فهمید که غزل غزلهای سلیمان رابطه عاشقانه که در رابطه بین مسیح و کلیسا کاربرد داره در عهد جدید رابطه بین مسیح و کلیسای او مانند رابطه بین یک عروس و داماد توصیف شده کلیسا عروس هست و مسیح داماد آیا یادتون میاد که یحیای تعمید دهنده به همه گفت که عیسی را پیروی کنی بعدها اونها نزد یحیا برگشتند و گفتند استاد شما به همه گفتید که همه دنبال اون مرد بروند حالا همه او را پیروی میکنند و دیگه کسی نمیاد که موعزه های تو رو بشنبه یادتونه که یحیی چطور به مردم پاسخ داد؟ یحیی پاسخ داد او داماد هست و اون مردم عروس من فقط دوست داماد هستم به این دلیله که گفتم همه برند و از او پیروی کنند ببینید زبان غزل غزلهای سلیمان زبان عهد جدید هم هست رابطه بین مسیح و کلیسای او مقرر هست که رابطه ای آشقانه بشه دقیقاً مثل رابطه‌ای بین عروس و داماد در غزل های سلیمان این رابطه به صورت تمثیلی به تصویر کشیده شده این غزل عاشقانه زیبا به طور تمثیلی در رابطه شخصی ما با عیسی مسیح قیام کرده و زنده هم کاربرد داره میتونید این قزل عاشقانه رو طور دیگه هم در زندگیتون به کار بگیرید در عهد قدیم قوم خدا باید خدا رو با تمام وجودشون محبت می‌کردند و در این سوی عهد جدید ما باید خداوند عیسی مسیح رو با تمامی سلول های بدنمون محبت کنیم ما در سرودهامون هامون میخونیم چقدر ایسا رو دوست دارم اما میتونم ازتون یک سوال خصوصی بپرسم آیا واقعا ایسا رو دوست دارید؟ آیا رابطه آشقانهی بیپایان با ایسا دارید؟ آیا امکان داره که ایسا رو محبت کنی؟ آیا این امکان هست که بدونید ایسا شما رو دوست داره؟ ما میخونیم ایسا ما رو دوست داره. اما میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم؟ آیا میدونید واقعا عیسی شما رو دوست داره؟ از یک الهیدان برجسته پرسیدن امیقترین ترین ای که دارید چیه؟ او یک دقیقه تمام به فکر فرو رفت، بعد پاسخ داد: عیسی منو دوست داره. من این رو میدونم چون کتاب مقدس اینو میگه. این, می این عمیق ترین ای بوده که تا کنون داشتم. این اندیشه ای بسیار عمیقه. من نمیدونم آیا از این اندیشه آگاه هستید و کاربرد های اون رو میدونید؟ یساح شما رو دوست داره آیا می دونید از کجا باید بفهمید عیسی شما رو دوست داره؟ چون کتاب مقدس این رو میگه. این حقیقت اساسی ترین کاربرد غزل غزلهای سلیمان هست. این غزل زیبا واقعا عاشقانه ای که باید بین شما و عیسی باشه رو به تصویر می‌کشه. حالا می‌خوام بر بعضی حقایق کاربردی که در غزل بزرگ عاشقانه سلیمان هست تمرکز کنم. یکی از حقیقی جایی که داماد عروسش رو به هجله و بعد به مجلس بز میبره منو با خودت ببر عجله کن شاه منو به هجله خودش آورده بعد او منو به تالار مهمانی برده و منو محبت کرده کاربرد این آیات اینه که شما رابطه ای با عیسی مسیح دارید یعنی اولا فرض بر اینه که با هم می باشید یادتونه که عیسی در معزه سرکو فراتر از این رفت او گفت رابطه ما با خدا؟ نباید بیرونی و آشکار باشه عیسی گفت که دعا این نیست که کنار خیابان سر چهار راه بیستیم و دعا کنیم این نوع دعا به این قصد هست که مردم بفهمند شما مذهبی هستی به گفته عیسی اگر ما واقعا میخواهیم که رابطه دعایی با خدا داشته باشیم باید به خلوت دعایی خودمون بریم و در رو ببندیم و پدر ما که در نهان است آشکارا ما را پاداش خواهد داد در موعظه سر کوه عیسی بیش از یک بار به ما میگه که رابطه دعایی ما باید در سمیمیت و در اتاق خلوتمون شروع بشه مارتین لوتر یک سرود کریسمس نوشته که همون مضمون رو داره ای عیسای قدوس فرزند نجیب رختخوابی نرم درون قلب ناپاکم برای تو پهن کردم که میتونه خوابگاهی خلوت برای تو باشه آیا قلب شما خوابگاهی خلوت فقط برای او هست؟ در این سرود عاشقانه محبوب ابتدا به خوابگاه خلوت یا هجله برده میشه و بعد از اون به مجلس بزم. به صورت کاربردی این هجله میتونه تونه خلوت دعایی سامیمانه شما با ایسا باشه و مجلس بعض میتونه پرستش های عمومی شما رو نشون بده. اعتراف و جشن ایمان شما در ایسا مسیح. آیا شما وقتی کسی نگاه نمیکنه وقتی کسی حضور نداره با ایسا رابطه دارید؟ یا تمام رابطه شما با عیسی زمانیه که در جلسه کلیسا با صدها نفر دیگه هستید. کلیسا مجلس بزمه و هجله اتاق نشیمن شماست. وقتی که پنج صبح بیدار میشید و هیچ کس غیر از شما اونجا حضور نداره، فقط شما و عیسی هستید، آیا تا حالا با او حرف زدید؟ آیا با او در سکوت هجله قلبتون در اتاق خلوت خانه خودتون رابطه داشتید؟ این یکی از کاربوردهای عملی در غزل غزل‌های سلیمانه کاربرد دیگر غزل غزل‌های سلیمان مربوط به این واقعیت که در سرتاسر سر این غزل زیبا گفتگوی بین این دو دلداده اغلب کوتاه و منقطع است اگرچه گفتگوی اونها هرگز با خواست داماد قطع نمیشه. این همیشه عروس هست که صحبت رو قطع میکنه. این واقعیتی رو به تصویر میکشه که دوستی ما با عیسی مسیح مقرر هست که همراه با مکالمه‌ای مداوم باشه اگر بگوییم با او رفاقت داریم حالان که در تاریکی گام میزنیم دروغ گفته ایم و به راستی عمل نکرد اما اگر در نور گام برداریم چنانکه او در نور هست با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می عیسی در تاریکی ظاهر نخواهد شد و با ما راه نخواهد رفت. اگر میخواهیم که با او دوستی داشته باشیم باید از تاریکی های من خارج بشیم و وارد نور بشیم، همانطور که او هم در نور هست و دوستیمون رو با او تجدید کنیم ما آرزو میکنیم که گفتگوهایمون با عیسی هرگز قطع نشه اما در واقع باید اقرار کنیم که اغلب قطع میشه کاربرد عملی اینجا اینه که وقتی دوستی شما با عیسی خراب و قطع میشه این عیسی نیست که رابطش رو قطع میکنه این ما هستیم سالها قبل یکی از دخترانم به من یک لوحه‌ی سنگی داد و این کلمات بر بالای این لوحه نوشته شده بود اگر مانند سابق به خدا نزدیک نیستید وقتی که سنگ رو برمیگردونیم در پشتش نوشته شده بود چه کسی ترک کرد اگر شما مثل سابق با خدا نزدیک نیستید خدا از ما دور نشده شما از خدا دور شدی شما این قرائت رو در سرتاسر سر غزل غزل های سلیمان میبینید محبوب من مانند غزال یا بچه آهوست. اینک او در عقب دیوار ما ایستاده از پنجره ها و از شبکه ها خیشتن را نمایان می سازن. محبوب من مرا خطاب کرده گفت ای محبوب من و ای زیبای من برخیز و بیا ای کبوتر من که در شکاف های سخره و در سطر سنگ های خارا هستی چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان صحبت قطع شده و چون صحبت قطع شده شما می که داماد بیرون هست و عروس در خانه هست داماد سعی میکنه به عروس دسترسی پیدا کنه و بعد این کلمات رو میبینید من در خواب هستم اما دلم بیدار است آواز محبوب من است که در را میکوبد از برای من باز کن ای خواهر من ای محبوب من و کبوترم و ای کامله من زیرا که سر من از شبنم و ظلفهایم از ترشهات شب پر است رخت خود را کندم آن را بپوشم پایهای خود را شستم چگونه ها را چرکین نمایم محبوب من دست خیش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش درآمد. من من خواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کنم و از دستم مر و از انگشتهایم مر صافی بر دست قفل بچکی. به جهت محبوب خود باز کردم اما محبوبم روگردانیده رفته بود. چون او سخن می گفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم. او را خواندم و جوابم نداد این تصویر آیه آشنایی در باب سوم مکاشفه هست جایی که عیسی میگه بر در زندگی ما ایستاده و در میزنه اگر کسی صدای او را بشنود و در به رویش بکشاید او به درون خواهد آمد و با او هم سفره خواهد شد این تصویر رابطه بین عیسی و فرد ایماندار هست عیسی بر در ایستاده صبورانه ایستاده و در میزنه او قفل رو نمیشکنه و به زور در رو باز نمیکنه. هیچ قفلی در بیرون در نیست، قفل در درون خانه است. ایمانداران باید از درون در رو باز کنند و عیسی رو به درون دعوت کنند. این در مکاشفه به تصویر کشیده شده و همینطور در غزل غزل ها نیز به تصویر کشیده شده است. بعد غزل عاشقانه بر عروس تمرکز میکنه، عروس در هجدش هست وقتی داماد میاد و در رو میزنه. عروس از بوی خوش عطر گیج شده داماد به در زدن ادامه میده و در میزنه و در میزنه و وقتی که عروس از زدن عطر فارغ میشه او بالاخره میره و در رو باز میکنه اما داماد رفته باز هم کاربرد عملی زیبایی اینجا هست که عروس رو با کلیسا مقایسه میکنه کلیسا اونقدر شیفته مسح با فیض و عطایای روح شده که از رابطه با منشأ این عطایا و و های روحانی قافل شده. کلیسای عیسی مسیح امروز اونقدر شیفته ارسه های خاص عطایای روح القدس شده که از هدف اصلی روح القدس که جلال دادن به عیسی مسیح قافل شده. رابطه واقعی کلیسای امروز باید با عیسی مسیح باشه که توسط روح القدس جلال یافته، نبا خود روح القدس. سالها پیش یک خادم کلیسای پروتستان که در اوج خدمت خودش به عنوان شبان خدمت می کرد تجربه ای روحانی داشت در نتیجه اون تجربه تبدیل به کسی شد که امروزه به او مسیحی کاریزماتیک یا دارای عطایا میگی بعد از این تجربه این شبان بار عظیمی برای تمام جهان پیدا کرد دکتر سیمسون نمیخواست که یک کلیسای دیگه ای رو راه بندازه اما خدا او رو به کار گرفت که کلیساهای بسیاری در نواحی شرقی ایالات متحده تأسیس کنه او اون کلیساها رو اتحاد کلیسا و مبشرین نام نهاد که معنیش این بود که اتحاد بین مسیحیانی که در صدد رساندن انجیل به سراسر دنیا بودند. در نتیجه رویا و خدمت دکتر سیمسون امروز جماعتی هست که اعضای کلیساهای بیشتری در خارج از خاک امریکا داره اتحاد کلیسا و مبشرین شهادتی بر رویاهای دکتر سیمسون هست دکتر سیمسون بعدها در زندگیش سرودی نوشت که رشد او در اطایا و تعمید روح رو به تصویر کشیده به خاطر احیای عطایای روح القدس در چهار دهه گذشته امروزه ما بیشتر در مورد عطایای روح القدس و تعمید روح میشنویم در این سرود دکتر سیمسون از آموزه غزل غزلها بهره گرفته اونجا که عروس به خاطر مشغول شدن با عطر داماد رو پشت در اتاق منتظر میذاره نام سرود زیبای دکتر سیمسون خود او هست و مضمون سرود به این ترتیب هست. زمانی برکت بود حالا خداوند هست زمانی احساس بود و حالا کلام هست زمانی عطایای او رو میخواستم حالا دهنده عطایا رو دارم زمانی دنبال شفا بودم حالا تنها به دنبال او هستم زمانی امتحانات دردناکی بود حالا اطمینانی العاده هست زمانی نجات نصف نیمه داشتم حالا بیشترین نجات رو دارم زمانی به هر سو رانده میشدم حالا او لنگر من هست زمانی مشغول تر ریزی بودم حالا با اعتماد دعا می کنم. زمانی نگران همه چیز بودم حالا او مراقب منه زمانی چیزی می خواستم، حالا هر عیسی بگه اونو می خوام زمانی همیشه درخواست می کردم حالا مرتباً ستایش می کنم. زمانی من کار می کردم و حالا او کار می کنه. زمانی سعی می کردم او رو به کار بگیرم حالا او مرا به کار میگیره زمانی قدرتی میخواستم حالا نیرومند هستم زمانی برای خودم زحمت میکشیدم و حالا فقط برای او زمانی بر عیسی امید داشتم حالا میدونم او مال منه زمانی شمع من رو به خاموشی میرفت حالا شمع من روشن هست زمانی منتظر مرگ بودم حالا منتظر دعوت او هستم و امیدهای من در پشت هجاب لنگر انداخته تا ابد تنها و تنها برای عیسی خواهم خواند همه چیز در عیسی و عیسی در همه چیز سرود زیبای دکتر سیمسون کاربورد زیبایی از این بخش از غزل غزلهای سلیمان هست که عروس رو در هجلش نشون میده که درش قفل و چفت شده و داماد در بیرون هست عروس از بوی عطر اونقدر سرخوش شده که داماد رو در پشت در رها میکنه تا سر انجامو و میره غزل آشق است از چنین کاربورت های. بود دیگری از کاربرد عملی در این رابطه بین دو دل داده هست. اگر این عروس میخواد که داماد رو درک کنه، او باید به اهمیت نگهداری تمایل از اطاعت از او رو درک کنه. این در راستای آخرین باب از انجیل یوحناست، ناس جایی که ایسا از پتروس میپرسه آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی؟ بعد میگه از بررهای من مراقبت کن. آیا مرا محبت می‌کنی؟ گوسفندان مرا شبانی کن آیا مرا دوست می‌داری از گوسفندان من مراقبت کن اگر شما می‌خواهید عشق تون رو به عیسی نشون بدید نحوه ابرازتون چطور می‌تونه باشه بر اساس آخرین باب از انجیل یوحنا اظهار محبت شما به عیسی باید با نشان دادن علاقه به گله او اظهار بشه با مراقبت از گوسفندان او با محبت به گوسفندانی که او به اونها محبت داره این کاربردهای حقیقی واضحه که باید با قصد داشتن همراه باشه در حالی که بررسی غزل های سلیمان رو به کار میبریم باید این سوال رو بپرسیم کاربرد اساسی این شعر زیبا چیه جواب اینه شعر عاشقانه زیبای سلیمان با زبان قلب درباره مهمترین احساسات قلبی ما صحبت میکنه و اون عبارت از عشق هست. غزل های سلیمان با ما درباره عشق صحبت میکنه. و مهمترین رابطه عاشقانه ای رو که میتونیم داشته باشیم در برابر ما قرار میده. مهمترین رابطه عاشقانه ای که ما داریم، رابطه ما با همسرمون در ازدواج نیست. مهمترین رابطه عاشقانه ما با خدا هست با عیسی مسیح، با تاکید محبت او نسبت به ما و واکنش او نسبت به ما. اگر میخواهید محبت رو درک کنید، باید از خدا شروع کنید. کجا میتونید طوری محبت رو یاد بگیرید که بتونید محبت رو در رابطه‌ای پرمعنی به دیگران بدید این محبت از خدا شروع میشه خدا محبته پس اگر میخواهید محبت رو درک کنید و بدونید چطور در یک رابطه محبتتون رو ابراز کنید از محبت خدا نسبت به خودتون شروع کنید بعد او رو محبت کنید چون او شما رو محبت میکنه. او رو محبت کنید و بعد از اون قادر خواهید بود که به همسرتون عشق بورزید به فرزندانتون به والدینتون و به کسانی که در زندگی شما هستند و شاید محبت به اونها سخته در غزل سلیمان شما محبتی رو میبینید که بین دو دلداده به همدیگر نصار میشه این در رابطه شما با خدا کار برد داره شاید بپرسید اساس و طبیعت چنین محبتی چیه اینجا بعضی از های محبتی که در کتاب سلیمان به تصویر کشیده شده وجود داره اون محبتی که محرمانه است و سمیمانه هست، منحصر به فرده، مشتاقانه هست، فاقد خودخواهیه و دو جانبه هست، رازی کننده هست، کمالاوره، آری از ترسه، مصمر غیر قابل تغییر و ابدیه. این مفهوم قزل قزلهای سلیمانه. همه اون مربوط به محبته و مفهومش اینه. ایسا منو دوست داره و من اینو میدونم چون کتاب مقدس اینو میگه. درس امروز رو با این نظریه به پایان میبریم. آیا محبت او رو میدونید؟ یوحنا سه شانزده میگه زیرا خدا اونقدر شما رو دوست داشت که یگانه پسرش ایسا رو داد تا اگر به او اعتماد کنید هلاک نشید بلکه حیات ابدی داشته باشید دانشوی عزیز متشکرم که در طی بررسی کتابای شعر وفادارانه همراه ما بودید دایی ما که نه تنها بدونید خدا شما رو دوست داره بلکه محبت او رو تجربه کنین یکی از مشخصه های محبت اینه که محبت خودخواه نیست محبت ایثار میکنه به این دلیله که خدا به ما بزرگترین هدیه رو داده و از ما میخواد اون رو با دیگران در میون بذاریم این هفته محبت بی قید و شرط الهام بخش و متوازن او رو با دیگران در میون بذارید در عهد جدید عیسی به ما میگه که شاگردان و پیروان اون از محبتشون نسبت به یکدیگر شناخته میشن. امیدواریم که ترتیبه بدین که در جلسه بعدی با ما همراه باشین. در جلسه بعد ما مطالعه انبیارو در عهد قدیم شروع خواهیم کرد. تا برنامه بعدی امیدواریم که محبت خدا شما رو تحییج کنه تا با ایمان و مطیع باشید. دعا میکنیم که محبت اون رو در چنان بود وسیع تجربه کنید تا اون رو با دیگران در بزارید